بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی‌اندازه رحمان مهربان نهایت قسم به زمانه بیغون انسان در زیان است جز آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند و همدیگر را به حق توصیه کردند و یک دیگر را به صبر و صبات سفارش نمودند